بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحدود کتاب حدود حدود جمع حد هست و حد اقوابت است مشخص برای جرائم مخصوص و الزاني على ضربین زناکار بردن هست زناکار بردن هست محسن و غیر محسنین یک محسن دو غیر محسن بله حالا این محسنو شرایت شد جلوتر توضیح میده ما اینجا توضیح نمیدیم محسن حده الرجمو اگر زناکار چی زن بود چه مرد محسن بود حدش رجم کردن سنگساره میگه و غیر المحسنی اما اگر زناکار زانی محسن نبود حده مئت جلدت حدش اقوبتش سد شلاق است و تغریب عامن و تابیدش یک سال الى مسافت القصر ولی تبعیدش به اندازه مسافت قصر خواندن نماز باشه. اینجوری نباشه که توی روسای دو کیلومتر در اون طرف تر, تر ببرن نه این جلاوتنیش این تبعیدش خارج کردن از شهر خودش، به اندازه مسافت قصر باشه که قبلا گفتیم این کتاب من اونجا پایین 96 کیلومتر تعیین کرده که خب در این مورد نظرت متفاوت است که چقدر کیلومتر باشه خب ما میگیم 6 کیلومتر و شرائط الاحسان 4 شرایط محسن بودن 4 چیز چه زمان شخصو میگن محسن که سنگ سار میشه یک البلوغ شخص بالغ باشه دو العقل عاقل باشه سه والحریتو سه آزاده باشه چهار وجود الوطع فی نکاح صحیح هم به داشته باشد با زنش در نکاح صحیح در نکاح صحیح وضع انجام داده باشه اینو میگند محسن اگر این شرایطو نداشت محسن نیست سنگسر نمیشه بالغ عاقل آزاده و همبسری از راه نکاح صحیح و العبد والامه هما نصف حد الحر برده و کنیس غلام و کنیس حدشون نصف حد انسان آزاده است خب سنگسار که نصف نداره منظور اون غیر محسن زانی غیر محسن که حدش ست شلاق بود نصف اونه بله یعنی این پنجه شلاغ. یعنی پنجه شلاغ. بس بردية مرد وكنيس حد النصف نصف حد ازاده هست آزاده غير محسن البته وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا حكم اللواط لواط وحكم امدن بر چهار پا این رو با چارپای انجام بده که حکم زنا مانند حکم زناست. یه اگر طرف محسن بود همون رج میاد. و من واطعه فی ما دون الفرجی هر کسی زنی اجنبی را وطعه کرد دون فرج یعنی در شرمگاه نبود در فرج نبود مانند بوسه و آغوش گرفتن بود بس هر کسی زنی رو عجنبی را بوسه گرفت یا آغوش به آغوش گرفت اززه از این دیگه حد روش اجرا نمیشه بلکه تعذیر میشه تعذیر یک عقوبتی اجتهادی است از طرف حاکم برای اون گناهانی که حد براشون در شریعت تعیین نشده و کفاره هم ندارد بله پس اگر بازنی خوابید بوسه گرفت وقت انجام داد اما در فرج نبود در شرمگاه نبود تأذیر میشه ولا یبلغ به الحدود و نرسد این تأذیر به حد یعنی این تأذیری که این آقا میشه مقدارش به حد پاینترین حد از حدود نرسه ترین حد از حدود حد نوشیدن مسکر و شرابه که چل شلاغ میگه اگر آزاده ای رو میخواد تعذیر کنه به کمتر از چل شلاق باشه چون پایینترین حد چل شلاقه که حد شرابه. میگه ولای ابلغو به تعذیری ادنال حدودی و نرسد این تعذیر به ادناترین حد به پاینترین حد که حد شراب هست همون شلاق هست بله مثلا آزاده رو میخواست تأذیر کنه فردان شیست سی, سی شلاخ بشه بزنه تا. خلاصه کمتر از پایین حد باشه که حد شراب همون چل بس محسن اونی بود که بالغ باشه، عاقل باشه، آزاده باشه و دخول انجام داده باشه آمیزش انجام داده باشه در نکاح صحیح اینا شرایطش بودند مسائلشو بیان کرد و گفت که حکم لوات و اتیان بخاین هم مانند زنایه اما اگر آموزشی با کسی داشت در فرج نبود، بوشه بود، فلان چیز دیگه بود، این حد نداره، فقط تعذیر داره. خوب، فصل احکام القذف، احکام قذف، احکام تهمت زدن، و اذا قذف غیره بزن فعليه حد القذف بثمانیت شرائط. و که تهمت زد شخصی دیگر را بزنا پس بروست حد تهمت حد قص به 8 شرط ثلاثه منها في القاذف از این هشت تا در تهمت زننده هستند سته از این شرط ها از این هشت تا شرط ستاش مال قاذف هستند تهمت زننده و هو تهمت زننده چی شرایطی داشته باشه برای اینکه سرش حد میاد ان یکون بالغ بالغ باشه وعاقلاً دو عاقل باشه سه و لا يكون والدا للمقذوف پدر تهمت زده شده نباشه اگه پدرش بود يا عقل نبود يا بالغ نبود برش حد ناميات. بر اون قاذف و تهمت زننده حد ناميات. و في المقذوفی 5 در تهمت زده شده هستن مال تهمت زده شده هستن وهو پنج تا عبارتاك یک ان يكون مسلمان بله تهمت زده شده مسلمان باشد برای اینکه بر قاذف حد بیاد بر تهمت زننده برای اینکه بر تهمت زننده حد حد بیاد مقروفي شرائته داشته باشد اگر نداشت دیگه حد نمیاد بر تهمت زننده یک ان يكون تهمت زده شده مسلمان باشد دو بالغن، بالغ باشه، سه آقلن، عاقل باشه، چهار حرن، آزاده باشه، پنج افیفن، پنج افیف باشه از زنا. ثابت نشده باشه با ادلی که در این باب معتبرند که طرف زناکار هست. اگر افیف نبود، زانی رو تهمت زد، حد نمیاد و یو الحر ثمانینه و العبد اربعینه بله حد تهمتو الان میکه میگه کسی دیگری را تهمت زد شرایط موجود بودند حد چقدر هست حد زده میشه شخص آزاده هشتاد شلاق و العبد اربعین و برده غلام نصف اون همون چلتا خوب تو حد القفی بثلاثت عشه باسی چیز حد تهمت از تهمت زننده ساقت میشه یک اقامت البینه برای این تهمتی که زد شاهد آورد چهارده شهود در این زمین چهارده است او افو المقذوفی یا اینکه که مقذوف مد عفو اش کرد تهمت زده شده سه او لعانی فی حق زوجه یا لعان کرد در حق زوجه هست البته این یعنی زمانی که زنش رو تهمت زده بود و لئان انجام داد اونجا حد تهمتی که به زده ازش ساقط میشه این در حق زوجه هست که قبلا در کتاب و نکاح شده شد بعد از لئان برای همیشه دیگه از همدیگه جدا میشه انتوزیهاتون جرد شد. فصلون حد شرابی. حدو, حدو شربی. حد شراب نوشیدن چست؟ من شرب خمرا او شرابا مسکرن یو 40 هر هرکس شراب نوشید یا خمر خودمون بشمیگیم دیگی شراب یا نوشیدنی مسکر دیگری نوشید. هرکسی و قول خودمون شراب نوشید یا چون شراب در زوقت عرب همون نوشیدنی یا ولی خودمون به خمر میگیم شراب هر کسی شراب نوشید یا نوشیدنی مست کننده دیگری نوشید چه خمر باشه چه مست کننده دیگری باشه یو حد اربعین حد زده میشه چلتا الله ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعذير و جائزة برصد برسد براي أزاده حشطات شلغ البته التأذيري ديج حدنا شون حد شمون چلتا هست ويجب عليه بأحد عمرين وبادو حد بر خورنده موسکر بر اونی که موسکری نوشیده واجب میشه با دو امر با دو سبب یک بلبینه یکی با شهود افراد شاهد وجود داشته باشه دیده باشن اونو که خورده دو اول اقرار یعنی که خودش بیاد اقرار بکنه ولا لا يحدو بالقعی والاستمکاه اما باقی که بیاد مثلاً شراب استفراغ کنه اول استنکاح یا بوی شراب بده با این چیزا حد ثابت نمیشه حد زده نمیشه محله فصل حد و حد دزدی. یکی اومد دزدی کرد حدش جزد. ما حد زنا رو خوندیم زنا کننده بود حد تهمت خوندیم حد شراب خوری و مسکر خوری رو خوندیم الان رسیدیم به حد دزدی فصل حد دوز سرقتی حد دزدی و یکتا و یدو به ثلاثتی دست دوز به سه شرط قطع میشه دست دزد به سه شرط قطع و تقطع يد السارق بثلاثة شرائط وقاتمش دست الدزد بثلاث شرط یک يك آن يكون بالغاً بالغ باشه دو وعاقلا ان دزد عاقل باشه سه و يسرق نصاباً قيمته ربع دينار من حرز مثله سه من شرط برای اینکه دست دزد قطع بشه این بشه که دوزی کند چیزی را که قیمتش ربع دینار باشه. برسد قیمتش. قیمت اون چیزی که دوزیده ربع دینار. خب دینار چار گرمو است ربع دینار میشه یکو خوردی. یعنی یک گرمو خوردی. بله. من منحرز مثلی بعدا اون دوزی کرده از جای خاص خودش اونو دوزیده باشه یعنی اون مالو از اون مکانی به دوزه که همچنین مالی در چونین جای محافظت میشه فرزن اگر طلای رو در طویله برداشت و برد این حرزه به نیست چون تلا در گاف صندوق جای خاصش بله میگه اون مال هم از جای خاص خودش که همچنین چیزی اونجا محافظت میشه برداشته باشه لا ملک لهوفی بله شرط بعد اینه که سارق ملکیتی در اون نداشته باشه یعنی در ملکیت سارق نباشه مالک صاحبش نباشه مثلا فرزن اگر طرف رفت مال خودش رو که الان دست دیگه هست دوزید دستش قطع نمیشه ولا ملک له معنیش اینه ولا شبهته فی مال المسروق منه، شبهه هم نباش یعنی چی؟ یعنی سارق اونجا حقی نداشته باش. فرزن اگر برده رفت از مال سیدش دوزی کرد، اینجا شبه است دست برده قطع نمیشه. چون نفقه برده بر سید هست. بله این. اتو قطعوید حالا اگر این شرایطو رو داشت دست قطع میشه، از اینجا بود توضیح میده به چه شکل. پس بالغ باشه دوست، عاقل باشه، به نصاب ربع دینار قیمتش برسه از جای خاصش باشه سارغ ملکی مالکش نباشه و شبه دران نباشد در اون مال مسروق و تقطع عویده اليومنه من مفصل و قطع کرده میشه دست راست دوست از مفصل کوع ببینید مفصل کوع کدوم هست؟ یعنی کف دستش که هست به سمت ابهام اینجا یه مفصلی هست اینجا که انگشت ابهامش از این مفصل قط میشه از هر کجا قط نمیشه بله این مچ دستش این مفصل میگه قط میشه دست راستش از مفصل کوع این مچ دستش دست راستش فان این سرقه اگر باره دوم دو رفت دوزی کرد قطعه رجل هل این دفعه پای چپش قطع میشه این هم از مفصل قطع میشه مفصلی که بین ساق پا و قدم وجود داره من مفصلش فا این سرقه اگر بار سوم دوزی کرد قطعه یدو هل را، این دفعه دسته چپش از مفصل همون مفصلی که تو دادن قطع میشه فا این قطی اترجور اگر بار چهارم دزی کرد پای چپش قات میشه. از کجا؟ از من مفصل بین ساق پا و قدم پا، کف پا. فر این سراق بعد از اگر بعد از بار چهارمین یعنی پنجم دو کرد از زیره تزریم میشه. و این هم گفته شده در کتب فقه که سبران کشته میشه یعنی مدتی زندان میشه سپس کشته میشه یا همانطور که دست و پاش بست شده کشته میشه ولی خب این امر به کشتنش در بار پنجم این منسوخ شده حدیثش میگن منسوخ شده در شروعی که این کتاب عبی شجا داشتن این چیزو می گفتند